صفحه 776 از وقتی که قانم از دمشق به بغداد سفر کرده بود، مادرش از او خبری نداشت، ولی بازرگانان همسفر قادم از بغداد بازگشته بودند و به مادر قادم گفته بودند، قالب را صحیح و سالم در بغداد دیده اند. اما چون نامهی برای مادرش نفرست بود، مادر بیچاره فکر میکرد پسرش حتما مرده است، به همین جهت شروع به سوگواری کرده بود و حتی ساختمان یادبودی یاد بودی در وسط حیات خاله خود به شکل گمبدی بنا نهاد و دیوارهای آن را با پارچه سیاه پوشانید و هر روز در آن ساختمان به گریه و زاری میپرداخت و در فراغ فرزند عشق میرید درست مثلان که فرزند او در آن مکان دفت شده باشد خواهر قانم را باینده ی دلها هم با مادر خود در این سوگواری همراهی می‌کرد. سلطان با همراهانش به خانه ی قانم رسید و سراغ او را از غلام قانم گرفت. غلام پاسخ داد: مدت هاست قانم در گذشته است و در اینجا مادر و خواهر او زندگی می‌کنند. سلطان وارد خانه شد و مادر و خواهر قانم را در محل ساختمان یادبود قانم دید و به آنها گفت: در جستجوی قانم به اینجا آمده است. مادر قانم پاسخ داد: مدت هاست پسرم از دار دنیا رفته است. ای کاش در این محل به رحمت خدا رفته بود و خودم با دستهای خودم او را کفن و دفت می کردم و هر روز بر سر خاک او دعا می خاندم. اما بدبختانه او در غربت به زندگی گفته است سلطان از بیتابی و گریه های مادر دلش به رحم آمده بود و پیش خود می گفت بر که پسر گناهی علیه خلیفه مرتکب شده باشد مادر و خواهر بی گناه او چرا باید مجازات شوند؟ و اموال اساس او چرا باید غارت گردد و خاننش را چرا باید ویران کرد با وجودی که او این مجازات را غیر آدلانه و ناپسندیده تشخیص می‌داد معhazا اجرای فرمان خلیفه مسلمین را بر خود واجب می شه مرد ولی در این حال ناخوشند بود که او وسیله گرفتن انتقام خلیفه شده است مأمورین سلطان که از یافتن قانه مایوس شده بودند به نزد سلطان آمدند و او را از نتیجه کابوش خود آگاه ساختند آنگاه سلطان به مادر و خواهر قانم گفت از این خانه خارج شوید چون طبق امر خلیفه این خانه باید مورد قارت اهالی شهر قرار گیرد و آنها هم از خانه بیرون آمدند و سلطان برای ایمنی مادر و خواهر قانم از بیحرمتی مردم شنل خود را که برای این دو بانوی بیگناه پوششی خوب بود روی بدن آنها انداخت و مردم هم وحشیانه حمله کردند و اشیاء قیمتی و صندوق های انباشته از ثروت و فرشهای مرغوب ایرانی و هندی و بالش های زربفت و ظروف چینی زیبا و گرانبها و جواهرات و آنچه اموال در آن خانه بود همه را به تاراج بردند فقط خانه خالی بهجای خود باقی ماند این مادر و دختر بیگناه حتی نمیدانستند چرا چنین تصمیمی برای نابودی آنها گرفته شده است بعد از تارج اموال خانه قانم توسط مردم سلطان به رئیس انتظامات شرط دستور ویران کردن خانه را داد و در مدت بسیار کوتاه، ممورین خانه را با خاک یکسان کردند در این هنگام سلطان فرمان خلیفه را دائر بر اوریان نشان دادن مادر و خواهر قانم به مردم و گردش دادن آنها به این حالت به آنها اعلام کرد آنگاه سلطان تدبیری به کار برد و خشن و زبری که از پشت به بود به جای رخت آنها به آن دو پوشانید ولی آنها مجبور بودند نقاب برو سری خود را از صورت و سر خود بردارند و ماهای بلندشان به حالت ژولیده و نامرتب در دید مردم قرار گیرد و آن دو بانوی بیگناه ناچار بودند صورت و بدن خود را با گیسوان بلند خود بپوشانند مردم از دیدن آن منظره ناراحت بودند و برای این دو مدود بدبخت و بی گناه عشق می ریختند. سلطان هم آن مادر و دختر را با پای و سر برهده در های شهرگردش می میدادند و گاه و بیگاه نیز جارچی با نواختن شیپور توجه اهالی شهر را به سوی آن دو جلب میکرد و با صدای بلند میگفت این است کیفر کسانی که نسبت به خلیفه بی حرمتی کنند. مردم از دیدن این منظری دلخراش ناراحت می شدند. مخصوصاً برای خواهر قانم رباینده دلها که بسیار دل و جوان و زیبا بود چنان شیمن و زاری راه انداخته بودند که بیان آن توصیف ناپذیر است هنگام شب معمولین سلطنتی این مادر و دختر را پس از یک روز تمام گردش نقیابان ها با پای برهنه و بدن اوریان دوباره به قصر سلطان برگرداندند ملکه از مشاهده ی وضع آن دو، بسیار متاثر گردید و به ندیمه های خود دستور داد نوشابه و شراب به آن دو موجود بدبخ بدهند تا نیرو و رمق از دست رفته را بازیابند. مادر قانم از ندیمه ای که به او و دخترش محبت کرده بود تشکر کرد و خواهش نمود از حضور ملکه پرس شود آنها چه گناهی اند که به چنین کیفر شدیدی گرفتار شده اند. ندیمه پاسخ داد این مجازات به خاطر رفتار توهینآمیز پسر تان قانم، نسبت به خلیفه است قانم سالم و زنده است منتها از بغداد فرار کرده و از قرار معلوم به دمشق آمده است همه مردم با این مجازات درباره شما و دخترتان مخالفند زیرا هردوی دوی شما را بی گناه وقتی مادر قانم فهمید که پسر زنده است از خوشحالی فریادی کشید و خدا را شکر کرد و گفت خانم و ثروت و دارایی فدای جانب سرم آنچه برای یک مادر اهمیت دارد زنده بودن فرزندش است من از سلطان هیچ شکایتی ندارم زیرا میدارم فرمان خلیفه را اجرا کرده است من به صحب خودم از مجازاتی که خلیفه درباره من اجرا کرده رازیم ولی از عذابی که دخترم تهمون می کند مرا ناراحت میسازد. خدا خودت اونم به سبر فکر کند در این وقت دخترش روباینده دلها گفت مادر مطمئن باش من هم مثل شما فکر می کنم و حالا که برادرم زنده است دیگر هیچ چیز مرا ناراحت نمیکند. مادر و دختر یکدیگر را برای مدتی در آغوش گرفتند و آه کشیدند و عشق ریختند ملکه و ندیمه هایش از این منظره تکاندهنده سخت غمگین شدند و برای آنها خوردنی آوردند اما آنها به دلیل نزاکت فقط لقمه خوردند چون خلیفه فرمان داده بود سه روز متوالی مادر و خواهر قانم را لغت و بیهجاب در خیابان های به گردش درآورند و مورد تماشای مردم قرار دهند دو روز دیگر هم آن دو نفر را گرد شهر گردش دادند ولی در این دو روز هیچ کس در دو کارها نبود و همه کسبه در خانه های خود مانده بودند و هیچ کس حتی از پنجره های, خانه های خود بیرون را تماشا نمی کرد. همه از مشاهده چنین مجازات غیر انسانی بودند در روز چهارم طبق فرمان خلیفه سلطان سوریه دستور داد در سراسر شهر جار بزنند که اگر کسی به این مادر دکتر پناه دهد ده و یا کمکی بنماید و یا حتی قطره آب و یا لقمه‌ای اینان در اختیار آن دو موجود بخت برگشته بگذارند فورم کشته خواهند شد و پیکر بیجانشان را تومه جانورانه درنده خواهند ساخت. بعد از آنکه فرمان خلیفه در سراسر شهر منتشر گردید همه مردم از یاری به این مادر و دختر خودداری کردند. حتی دوستان آشنایان سابق هم روی خود را برمی و هیچ کس در فکر کمک به آنها نبود. مادر قانم با ما اندوه و دلشکستگی بسیار به گفت عجب دنیای بی است. دوستان قدیمی ما از ما فرار می خونند. حال که وز بدیم است به است از این شهر به محل دیگری برویم تا دوستان من مجبور به فرار کردن از ما نباشند این دو موجود دلشکسته و مایوس خود را به بیرون دروازه شهر رساندند و در خانه ویران شده‌ای به استراحت پرداختند در آنجا آدم مسلمانی از راه نوع دوستی غذایی در اختیاران ها گذاشت و از ترس مجازات و دستگیر شدن در آنجا نماند و فرار کرد در همین هنگام سلطان هم توسط کبوتر نامه گزارش داد فرمان خلیفه اجرا گردیده است. خلیفه همسران توسط کبوتر نامه بر به سلطان دستور داد مادر و خواهر قنیم را از شهر دمشق برای همیشه تبعید کنند و هرگز آنها را به دمشق راه ندهند. مامورین سلطان فرمان خلیفه را اجرا کردند ولی دلشان به حال آن دو سوخ و خودشان مقداری پول به مادر و دختر دادند تا با آن نان و آب و آذوقه تهیه کنند. و کیسه هم برای حمل آزوغه در اختیارشان گذاشتند تا به گردن خود بیاویزند بعد از مدتی راهپیمایی مادر و دختر به نخست نهکده رسیدند و روستاییان دور آنها حلقه زدند و از آنها پرسیدند چرا پوشاک آنها چنین است مادر قانم در حالی که به گریه افتاده بود آنچرا که به فرمان خلیفه توسط سلطان و معمولین او بر او و دخترش آورده بودند تعریف کرد روستایان خوشقلب هم دلشان به حال سوخت و در حدود وضع مالی خود به آلها کمک کردند رخت زبر و خشن را که از پشت به از بافته بودند از سندن را و رخت تازه و کفش های تازهی که رستاییان به آنها داده بودند پوشیدند و پوششی هم برای پوشاندن موی سر خود گرفتند بعد از چند روز اقامت در این روستا مادر و دختر به سفر خود ادامه دادند تا به شهر حلب رسیدند و در آنجا شبها را در مسجد روی گلیب بیخوابیدند و شام را هم با غذایی که مسجد به مسافرین میداد شکم خود را سیر میکردند. بعد از چند روز استراحت دوباره به سفر ادامه دادند تا از رودخانه فراد گذشتند و وارد سرزمین بین و شدند و از آنجا به شهر موسل و سپس وارد شهر بغداد شدند البته فکر نمی کردن. قانم در شهری که خلیفه سکونت دارد اقامت کرده باشد اما ما با این همه در این شهر به جستجوی قانم پرداختند و هر کسی را که می سراغ او را می گرفتند اینک روباینده دلها و مادرش را به حال خود می و به سراغ فتنه که در زندان سیاهچال چال قصد به سر می می در یکی از شبها که خلیفه مانند همه شبها به تجسس و بررسی در گوشه و کنار قصر و شهر میپرداخت چون کنجکاوی پادشاهان عالم بوده است و به همین سبب هم بر بسیاری از اسرار و یا اخباری که در درون قصر او میگذشته آگاهی می‌یافته شب هم به کنار زندان سیاهچال آمد و صدای ختن را شنید که میگفت بیچاره قانم که مرا از مرگ حتمی نجات داده به جای آنکه خلیفه او را پاداش دهد میخواهد وی را مجازات کند با این تطیب خلیفه در روز رستاخیز در برابر خداوند چگونه پاسخ خواهد داد ای قانب بدبخت تو جان خود را در راه خدمت به هم از دست می نهی تو هیچ گناهی نکرده ای. خدا شاهد است که بین من و تو کمترین رابطه ای موجود نبوده است کاش مرا را نجاد نداده بودی تا خلیفه به تو بدبین نشود. خلیفه ما این سخنان به خود آمد و دستور داد فتنه را به حضور آوردن مثل در برابر خلیفه به دشاری عدب زمین را بوسید و عشق از چشمانش جاری شد خلیفه بدونان که اجازه از زمین را به او بدهد گفت به نظر می رسد تو برای شخص ستوکاری می شراسی. در حالی که من بسیار علاقه به اجرای ادالت هستم از تو میخواهم که بدون ترس حقیقت را برایم شرف دهی و بگویی جوان بیگناه چه چه کسی؟ فتنه گفت جوانی بیگناه همان بازرگان جوانی است که اگر به کمک من نیامده بود اینک زنده نبودم. او در کمال بینزنی من رو نجات داد و به خانه خود برد و پذیرایی کرد. اینو که را باید اعتراف کنم که شاید از همان ابتدا این بازرگان قصد داشت زندگی خود را وقف خدمت به من کند و میخواست که من این موضوع را درک کنم و میکوشید که با محبتها و فداکاری های خیش راهی در دل من باز کند. ولی حمیه شدید من افتخار کنیزیه خلیفه را دارم به من گفت آنچه برای بزرگان جایز است برای زیردستان ناشایسته است از آن لحظه به بعد این جوان در نهایت پرهیزکاری و پارسایی با من رفتار کرد اما شما در نهایت شدت و خشونت با او رفتار کردید خلیفه که از سخنان فتنه ناخشنود نبود از فتنه پرسید آیا مطمئن هستی که این جوان شخص پرهیزکاری بوده است فتنه پاسخ داد رفتار معدبانی او ایجاد حس احترامی در من کرد و از شما چه پنهان بدون آن که بخواهم رفته رفته احساسات رقیب در قلب خود نسبت به او احساس کردم او هم به این نقطه پی برد ولی به هیچ وجه از این آمادگی من سو استفاده نکرد در حالی که می دانستم شعره های عشق سراپایی وجودش را به خاک سر تبدیل کرده بود از راه ثواب بیراه نرفت در وفای به عهد ثابت قدم باقی ماند. و آنچه را زبانی گفته بود در عمل هم رعایت کرد اگر به جایی سلطان مرد دیگری این اعترافات صادقانه را شنیده بود سبب برانگیختن حسادتش میگردید اما گویی این سخنان آرامش خاطری به سلطان مقتدر بخشید در این هنگام سلطان از فتنه خواست که شهر دهد تا به چرا خود را در خانه قانم پنهان کرده بود پاسخ داد از ترسان که زبیده پی نبرد منزنده هستم خود را در خانه ی قانم از انظار پنهان کرده بودم تا به گوش او نرسد و در این مدت قانم تمام کوشش خود را کار برد تا موجبات آسایش مرا به هر قیمتی فراهم آورد خلیفه گفت هرچه گفتی باور کردم اما چرا زودتر برای من نامه ننوشتی فکس پاسخ داد چون قانم از خانه به نزد خارج می‌شد. سی روز پس از ورود خلیفه آگاه شدم و من هم بلافاصله نامه را به حضورتان فرستادم تا به دست ندیمه شنایی روز رسید و او هم در پی فرصت مناسب بود تا به حضورتان تقدیم کند خلیفه گفت سخنان تو بردنم نشست و به گناهی تو و قانم را میپذیرم حالا بگو ببینم برای قانم چه کاری انجام دهم من از خود پشیمانم و درباره مادر و خواهر قانم رفتار ناپسند و تصمیم ظالمانه این گرفتم و باید جبران کنم و در مورد قانم دستور می دهم در سراسر سر کشور اعلام کنم که قانم مورد بخشودگی قرار گرفته و جان و مال او در امان است و بعد هم باید کلیه ی زیانهای مالی او و خانواده اش را تلافی کنم و به خاطر آنکه قانم تو را از مرگ حتمی نجات داده و بعد هم این همه مهمانی و مراقبت و پرهیزگاری نشان داده تو را به همسری او برمیگزینم. فتنه از خوشحالی بسیار نمیدانست چگونه از خلیفه سپاس گذاری کند. آنگاه به تالار همیشگی از شخص همه چیز و همه اساسیه مانند گذشته به نظر می رسید. از دیدن صندوق های متعلق به قانم خوشحال شد. چرا که خاجه باشی آنها را در آنجا به امانت گذاشته بود. بعد از اعلام بخشودگی قانم و انتشار این خبر در کشور و گذشتن مدتی طولانی از آن هیچ خبری از قانم به دست نیامد. فتنه یرام بود. رود و قانم از کسالت اندوخ و فراغ او تلف شده باشد به حضور خلیفه رفت و اجازه خواست که او خودش به جستجوی غالب برود خلیفه خود موافقت کرد فتنه هزار سکه طلا در کیسه گذاشت و به اتفاق خاجی حرمسرا سرا سوار بر اسب شد و مسجد به مسجد سر زدند و در هر مسجد سکه طلا به نیازمندان و اشخاص فقیر دادند و از آنها تقاضا کردند سمیمانه دعا کنند تا دو آشب و مرشوقی که خواهان وصلت یکدیگرند دیگرند مویدگر دیگر رو برو شوند و خداوند آن دورا کامیاب گرداند. روز بعد دوباره فتن هزار سکه تلوی دیگر برداشت و با همراهی خاجباشی به بازار جواهر فروشان رفت و رئیس سنف جواهر ساز را که پرهیزگاری و نیکوکاری و کمکهای مالی او به اشخاص محتاج معروف بود ملاقات کرد. و هزار سکه طلا را به او داد این شخص بیشتر دارایی خود را برای غذا و داروی بیماران و مسافرین تازه وارد که بی پول می شدن صرف می کرد و همه مردم به امانت و درستگاری او ایمان داشتند فطر پول را به او داد تا بین مسافرین تازه وارد به شهر که غریب و بی پول هستند تقسیم کند رئیس سلف جواهر گفت ای بانو بود دوباروی مسافر که در این شهر شهرکس را شناسند از راه دور وارد شدند و چون بیپول بودند و خانه هم نداشتند آنها را به خانه ای خودم بردم. اگر مایل باشید خودتان تشریف بیاورید و به آنها کمک کنید. آنها افراد با شخصیتی به نظر میرسند که از خانواده محترمی باید باشند و مردمان آبرومند و بزرگمنشی هستند. همسر من هم همین عقیده را دارد از آنها پذیرایی می کند. برای رعایت شعون آنها را می نمید. بستر و حول و ملافه تمیز مخصوص میهمان را در اختیارشان گذاشته و شخصا به خدمت آنها کمر بسته است فتنه جنا که باید شود گفت با یه لب آنها را بالاقات کنند و شما یکی از خدمتکاران خود را برای راهنمایی همراه من کنید رئیس سنف هم نکر مخصوص خود را همراه او کرد و فتنه به دنبال او راه افتاد تا به خانه اش رسیدند نوکر وارد خانه شد و به همسر ارباب گفت بانویی با شما کار دارد همسر رئیس وقتی فهمید که با بانویی از دربار سلطنتی روبرو شده است احترام کرد و در برابر پرسش فتنه پاسخ داد که دو بانوی غریبه در این خانه اند و اتاق آنها را به او نشان داد فتنه فورا به اتاق وارد شد مادر و خواهر قانم از جای برخاستند و سلام و احترام کردند فتر گفت از دیدار شما بانوان خوش نودم من همه گونه امکانات دارم و از شما پذیرایی می کنم مادر و دختر از فطره تشکر کردند و مادر قانم گفت من بیوه ابو عیوب مازرگان معروف دمشقم و پسری داشتم به نام قانم که بی جهت او را متهم به رابطه با سگولی خلیفه کرده اند و به خاطر این اتهام بی اساس به دستور خلیفه خانه ما را خراب کردند و اول زندگی ما را به قارت بردند و ما را اوریان کردند و سه روز در سراسر سر شهر در معرض نمایش مردم گذاشتند و بعد هم ما را از دمش تبعید کردند اما تمام این سختیها و ناملایمات را در برابر زنده بودن فرزندم و قانم برخود هم وار و ضررهای مالی و از دست دادن خانم و اموال قیمتی و اساسیه در راه یافتن فرزندم اهمیتی ندارد من اطمینان دارم که قانم بیگناه است. در این هنگام فتر ساحلان او را قطع کرد و گفت میخواستم شما را مطمئن سازم که قانم بیگناه است. نام من فتنه است. من همان کسی هستم که شما آن همه از او شاکی بودید. من, من به شما مژده می دهم که همه ی نامالای ما به پایان آمده است. من خلیفه را به بیگناهی قانم معتقد ساختم و وقتی فهمید که قانم با زرگان خوشنام و جوان پرهیزکار و وفاداری است او را از هر تهمتی پاک دانست و دستور داد در سراسر سر کشور اعلام کنند قانم بی گناه است و مورد بخشودگی و محبت خلیفه قرار گرفته است و برای جبران آزارهایی که خلیفه در اثر شتاب زدگی و حسادت نسبت به قانم و شماها کرده است قانم را به همسری من برگزیده و در مورد شما و دختر تردیز دیز با رفتار محبت آمیزش شما را به دست آورد آنگاه فتن مادر قانم را در آغوش گرفت و او را بوسید و آنگاه خواهر قانم را در آغوش گرفت و از هر دوی آنها دلجویی کرد و گفت: قانم را پیدا خواهم کرد. در این لحظه یکی از دوستان رئیس سنف جواهر جواهرسازان نزد فتن آمد و گفت: دیروز یکی از ها جوانی را در حال بسیار نظاری در بیابان می بیند. او را روی شطر می نشاند و چون قادر به نشستن نبود با طناب به شتر می‌بندد. و به شهر میآورد اینک این جوان در من بستری است و مشغول درمان و تبیعت او هستیم چون بسیار ناتوان و رنجور است فتنه و مادر و خواهر قانم هرسه به خانه دوست رئیس سنف جواهرسازان رفتند ابتدا فتنه وارد اتاق شد و جوان ضعیف و بیماری را روی تخت دید که اول او را نشناخت بعد با صدای ملایم قانم را صدا زد قانم چشمان خود را گشود و گفت آیا خواب میبینم یا در عالم بیداری فتنه عزیزم را میبینم فتنه گفت حقیقت را میبینی من فتنه هستم که برای دیدار تو آمدم قانم از فرت ناتوانی به سختی حرف میزد از خوشحالی از خود بیخود شد و مدتی بیهوش گشت و بعد از مدتی بهوش آمد فتنه گفت مجده میدهم که خلیفه هارون و رشید فهمیده از تو بی گناه بوده ای و در سراسر کشور اعلام کرده است تو را بخشوده زیرا گناهی نکرده بودی سپس فتنه گفت مجده بزرگتران که خلیفه تو را به همسری من برگزیده است و ما می توانیم به عنوان زن و شوهر یک عم زندگی همراه با شادکامی در پیش داشته باشیم دیگر هیچ گونه ترس و نگرانی نداریم و اموال و صندوق های تو هم در اتاق من در قصر خلیفه است خلیفه حارون و رشید هنگام خش تصمیم های وحشتناک می گرفت میشد. و ماجرت می‌خواست و با سخاوتمندی و گذشت فراوان در مقام دلجویی از تندیدگان بر می‌آمد. خلیفه فرمان داد که قانم و مادر خواهر او را به حضور آوردند. وقتی چشم او به زیبایی بیمانند خواهر قانم روباینده دلها افتاد، سخت عاشق او شد. آنگاه از مادر قانم و دل رو با بسیار عذرخواهی کرد. به قانم گفت: از امروز از بلندهای قان دربار خلیفه ای و از این لحظه هم فتن آزاد است و کنیز نمی باشد و من هم برای تمیه زبیده دل را به همسری خود انتخاب می کنم و مادر او را هم به همسری جعفر نخست وزیر می آبرم. آنگاه آغز را و در یک زمان سه عقد زناشویی انجام شد قانم از مراهم سلطان سپاس گذاری کرد که او را به افتخار خدمت گذاری در دربار خود نائل ساخته و خواهرش دل را به عقد خود در آورده است وزیر هم از توجه مخصوص سلطان نسبت به خود تشکر فراوان کرد. فتنه هم از فرط خوشحالی در پوشت خود نمی گنجید و به پای سلطان افتاد و امترار و سپاس خود را تقدیم کرد. آنگاه سلطان دستور داد که سرگذشت قانون و فتنه و حوادثی را که پیش آمده بود مورخین مشهور به رشته درآورند و ایرک این داستال به دستباه رسیده است. گذشته شاهزاده زین الاسنام و شاه جنیان در روزگاران گذشته پادشاهی در بسته سلطنت میکرد که دارای ثروت بیحساب بود و با رعای خود در کمال ادالت و مهربانی رفتار میکرد همه او را میپرستیدند زیرا غمکار مردم بود این پادشاه فرزند نداشت و از این جهت بسیار نخوشنود زندگی میکرد برای اینکه خداوند فرزندی به او عنایت کند هدایای گرامبه برای اشخاص با خدا و پرهیزگار فرستاد و از آنها خواست هنگام نماز از پروردگار بخواهند که همسر او برایش پسری به دنیا آورد اتفاقا این خواسته انجام شد و همسر شاه پسری زایید که او را زین الاسنام یعنی زینف بتها نام گذاشتند پادشاه پیشگویان را احسار کرد تا از ستاره بخت فرزندش پرسش ها خودند آنها پاسخ دادند ستاره او شب می دهد که این فرزند عبر درازی دارد و از شجاعت کامل هم است، ولی شهامت کافی که بر سختی ها و ناملای ما چیره گردد ندارد پادشاه از این پیشگویی ناراضی نبود زیرا عقیده داشت آدم شجاع در زندگی پیروز خواهد شد ولی گفت فرزند من باید گرم روزگار را تجربه کند تا ورزیده شود زیرا نابلای زندگی سبب دو شود تا انسان به درجه پایداری و بردباری خود پی ببرد و با این ترتیب فرزند من لیاقت بیشتری برای رهبری مردم به دست خواهد آورد. شاه به هنگام لازم فرزند را به آموزگاران دانا و ورزیده سپرد تا در آموزش و پرورش او بکوشند و نهایت سرپرستی و دقت را به کار برند و استادان نامدار را برای راهنمایی و تربیت او گماشت تا شاهزاده درس خوانده و لایق شود. که شایستگی پادشاهی پیدا خودد و به همین شیوه زینان اسلام تربیت یافت و به سن رشد رسید اتفاقا پادشاه به تون ناگهانی بیمار شد و ناراحتی او روز به روز شدت گرفت به طوری که پزشکان ورزیده از درمانش ناامید شدند و مردم که او را از جان و دل می پرستیدند دعایش کردند اما سودی نبخشید و پادشاه که مرگ خود را نزدیک می دید به دنبال خرزند سرستاد و او را در کنار بستر خود نشانید و اندرزها کرد از جمله به او گفت سعی کن مردم تو را دوست داشته باشند نه اون از تو هرگز به چرد زبانی افراد تملق بو نکن و تشویق و تنبیه را به یکسان به کار گیر توجه داشته باش تا فریب ظاهر خوش و زبان نرب اشخاص غیر صمیمی را نخوری. بعد از آنکه پادشاه دادگر بدرود زندگی گفت زینال اصنام به جای او بر تخت شاهی نشست و مدت یک هفته مراسم سوگواری به جای آورد و بحر سرطرتی بلا به خود تهیه کرد و تبلی شیرین زدگی پادشاهی را چشید. و وقتی میدید که درباریان ها را بزرگار کشور در برابر او خم میشوند و فرمانبرداری نشان میدهند لذت می‌برد. اطاعت نازی دست بودن را برای آنها جزء وظایفشان می‌شمرد اما برای خود وظیفه ای در برابر دیگران قائل نبود و به این دلیل شیوه حکومت مردمی و مردم پسند را پیش نگرفت همه ای اوقات را با همنشینی جوانان عیاش به خوش گذرانی کرد و در این راه ثروت خزان را سخاوتمندانه به باد میداد و گروهی جوانان بی بند و بار به کامرانی و کامروایی در کنار او روزگار می‌گذراندند ملکه مادر زینال اصنام بسیار کوشش کرد تا شاه جوان را از هدر دادن این همه ثروت برکنار دارد و روش خود را در شیوه ی حکومت کردن و اداره کشور تقلید دهد ولی های ملکه به جایی نرسید و فرزند او ثروت کشور را به هدر داد. ملکه می مردم از طرز رفتار شاه برپا زند و اساس سنتنشون در هم ریزند و انقلابی برپا کنند. و این شورش منتهی به از دست دادن تاج و تخت و جان سلطان گردد. ملکه با توجه به این نکات از مشورت مردان آگاه و دانا و آشنا به اصول کشورداری بهرمند میشد، و با تدبیرهای اندیشمندان بزرگ از دفاع خواستن مردم جلوگیری و زیل‌اللسام از اوضاع مملکت نگران بود و شبیه از شبها خواب دید پیربرد خشرو و روشندلی به او میگوید از عاقبت کارها نترس. اگر میخواهی به این ناب سامانی ها پایان دهی، باید سفری به مصر بروی و در شهر بزرگ قاهره ثروت بی‌کرانی در انتظار توست. زن الاسلام بعد از بیدار شدن از خواب، شتاب زده سراغ ملکه رفت و رویای خود را برای او تعریف کرد و گفت: برای به دست آوردن ثروت فراوان، باید به مصر سفر کنم. ملکه به او گفت: خواب واقعیت ندارد و نباید به آن ترتیب اثر دهی. زین و نسلون داد که آموزگاه